بیگرین عزیزو خوشوی سلطن لبید خوشحالین لابشی سیونوی خوندوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکرانی حتین ولاتن فرمون لگلمان بن. اجری مکرانی بس لژنو گذرنی خو دک لوکاتی لسوریاب وو دلیت الا دوری عبدالعزیز میوانی اشایریک بوین عربي صحرا نشین گود ا اکرات بگارین یعنی کورد گاوانی بوبونه عرب او بوبونه صحرا شامی حورمان زور پیو کی رو خوش زمان خوش لسرخو لم سفردا له هر شيباین دی منیش کوردم زوری هاگر بو دوامین روشی سفر من بو لناو ماشینده گوتي استاد جگرخون دزانم تو شعریکی گوری کردی. حزدکم شعریکی خود بخوین یاوا. سیده سرودیکی خوینده و بیدجلا، بیفراد، امچنو کردنوی تیده بو. کابرا پیکنی و تی اگر من پیوکی بدفر بو مایا استا بای اعدام کردنم ادای. تو ارزی سوریا همو به مالی کرده نزانی. ارزی سیدم کرد. بنا شکری نبیاد تو کنی دعات وین کردو اگر امد به عبدی تیلو بگوتایو قصه برود گوت به مدعی آمی عربت بفرموایا هر دوک آفری من لیا کردی دگل شیخی هرگوری عشایری شمر دهم ده الهادی الهادی بوبوم آشنا لچند جرحاتو چو کردنیده زوربه شارزای دام و دستوری اشعاری عرب بوبوم کچوم جزیره هیچ کرمانجیم نه زنی. به عربی قصهان دگل ده دفتر و قلمم و کارخس روزانه لای چچه ناغای حاجو که هیچ زمانی هی که نزانی کرمنجی نبی دانیشتم او دیگو تو دم نوسیه لمولوی شم هر دپرسیو خون فیر کرمانجی کرد منی وک همو کودیک زور عاشقی مموزینی خانی بم لی اران دی بوم هر فرسی کنیم دزانی که عربی فیر بوم کرمنجی کم نزانی بلان با کرمنجی فیر... فیر بون او گریه کورشم بر هوا بلان با کرمانجی فیر بون او گریه کورشم با بو ملایان جزیری که فارسی که زوری تیده کول بون بون سورانی شانم لیده خست شوانه پاش من دال نوستن چند بیتی که مموزینم با پخشانکی ساده و رجیر کتابم کتیب مولادنا پخشانکم با شعر دهنده تا قافی و دقی شعران دو پات نبنه و گنده که برقی ها کمال حاجو مطور رکیان بعد سای ساعت یازده پاش دیوخان چالبون دکو جاوا دبواه لبر چرای نود بنوسم بالام اگر لوان خریج رابورد نو آرق خوردن بناه نعمت بو. برقت تا درنگانی شو هبو. نخوش بوم. زور دکو خیم. شوانه لنو سیندا زورم سیگار دکی شا. معصومی ها سرم با کذک و دپار روا. روحم با خود بکه. هند شا. ناچار زوزو قنج که جغارکانم دشارده و توابزانی کمم که شاوا دا پیش دا پیشک یکانی که صوفیه ایتیا لبرگرانی بوم نکره که تی خلاصم کرد بام دایو دا سر ارفانه پیشک یکان چاپی مموزینکم دا نوسی و ما لبیست و دوی بفرانباره و تا بانمری 1958 ورمگیاره زستان که شوانه لمال دا نوسی لبهر دا روزانه دا باخی گند که زور شوه نیکی شاعرانه بو ساعت نیوی پاش نیو رو رشنو سکم تاو کرد لخوشیان ددگو فریم حتمو مال هر درکی حساره وقی جاندم تاوم کرد تاوام کرد آی خدایه لخوشیه خری که نان خواردن بوین محیدین حاجو کوری یوسف حاجو حتمال ویتی سیدا نایی بچی نگرانیک کی زور خوشه ویتن بو که وتی دچی این دیواری، دگل محیدینو دولاوی تری مال حاجو لناو جب دا بیرم دکرده و حیران، لحوینی پنجاو شش و لیرم، چون زیاد لحمودمان امرودم بن سیرانی این دیوار براستی شونکی خوشه، لسر چیه اکی نرمی زور برزوا دروانیت روباری دیجلو پرالباغو باغد شو تا پاش نیواروی بیانی لویمین، و تین باب چین شاری جزیرو بوتن منیش چی؟ جاره ما ندن؟ ویدان بله، هاتو چوی سوریه کن بو نوشار ازاده، شتی خویان لبازار اویه کرن. مدیری پوستی پولیسی ان ویدان منیش برن، دوربین محی سیری چیه بوتانی پیپکن، گئین بستین شهر جزیر، لبر او پولیس من دگلا، رگی ناوشاریان نوشاریان ندین، بلام همو مالی شهر و دورو بری، وکی هیل دیار بو، کردیکی تمن چل، یان چلو، پیانسالی صالی هتل لمن، شارو، زور شرذابو، به با اشارته و بیوتین، تماشا کن. آوا کشی بالکه کمالی میرانی جزیر بو، استاش سربازخانی ترکانه، او, او, او کانی آوا لقديگری پشت مالانه، او کانی قسطلیه، کجیجوانی مموزیند بو، به هو دلن نزگذان، او دشتوکی کدی بینن وستانه. او میوان کردانج ک د زلی بنوداتې پرې دروازه او اقاره هو مرانو اولادریش میدان ناوه لپر دلم گرمده هات رام کردو دور کوتم چومناو کنه قبرستانه کوه سرم با کله کو ناو ګریام اما ګریان سرم به نسکه نو حال د جيره لموایه پتل ده دقیقه کولی ګرینم ل جوش نکوت هې آرام بوم چاوم سرې روانیم هاوری کنم لیم دور وستاونو لآنی گریانده نهاتون سببم لیو پرسن لودم دا کپیاو جزیریکا ناوی شوه نکانی دگو کوتا دلموا لدلی خوام داوتم من دونی لترجمه مموزین بو موا تو بلی خانی لترجمه کی رازی بو بیو لپاداشتا او سفر بوری خسته بم کشار خوشویستکی لان که دلداری مموزینانم رنگ رنگوابی ایتر گریان ملی و آرام و اقری پینه هشتم و تا وقت درویش جزمه گرتمی زورم شعر لجزیره نوسی و کزوریان لدیوانکم دا اشارهان پیکره و زور جار لجزیره و دچوم شاری شم دگل زبیحی ک سرکارگی دکرد دا رام دابورد دچوین دا مالی روشن خانم بیوزنی جلادت علی بدرخان که مدیر مدرسه و جنیکی زور، زنه و عدی بو بناوی جمشید بدرخانو و کچیکی گوره بناوی سینم بدرخان لشام ها بو. اینجا روا بو دو منگ لشم دماما و هرگا بو مخارج دادمم با اکاسان ارمنیا و دگرم. اینجا مم دکردن، اکسم با چاب دکردن و حق دست کم دستند. مخارجم کم بو. لاؤتیل یک دا جیام هی کردی که عرب زمانی کردکانی شامو ناوی ابو ایوب بو شوانه لیریکی سوریم ادا که دا بودوت من برچای دونانی گوری خو مالی جنه دروزن که هر نه جوانکانی ساب لاغ بو دم کریو دچومه دوکانی فولی مودم مست فروش چندی دخوی بسیفلس پاقلی کلایو نوماست رونو پیواز بسروا هندم دخوارد هر درینگم دهد یتر تا نیو برسی بیر سینابو شوانش چندانه فلیفلا دلن توزک هی بیرو د توز بی بار سوری کداه لا روند سورد فقیرانو زور هرزان دمکرد شیو روج یودتمن لسرم دهاتو لپیموا درچو بو شرطه پولی چاخانه شم ادا چاخانه کبو خاونکی ناوی ابو العیز بو بو بو مکو هم پنبرانی اواری عراقی چایک بچاره لیره یک پینچ قران یک چاد خوارد و تازه او روژه بیست جاریش بروی بایو حت بایوه کس نیدگو کرد بچنده. روژانه لو چای خانه دگل اسمان سبری شایر که با اپو اسمان دماندواند تخت من بازیه کرده. زور جار لسرفیل فیال کردن با هاتو زو اج دبوینوه. پیکنین خوشمند به سلیم نوکه کونه سروک شوه عراق بو که همیشه چورتی اداو دمی اوالا دکردو میش لذاری دچون جورو دردکوتن. خیال بهنه بر خود دریږي چې باریکی ناقولای شند پیو ملیکی سیسي چلکن د موچاوي کې دریژوکا دو پروش لود دریږي دندو کډالشی سره کې دریژ کچل ک یک توخی پیو به لخن درابه شله به پرله پلی سپیو خنۍ او شیخ عابدبو کوریم ملای خځه ل ایران د ګل ملا مصطفی بو ل ګرانوی عراق ل سر برینداري چن ب جهشتو کله به فردا جيري خوردو تفنګ کیرفاندو له هولیر مالو منالی پیکو ناو چوار کوچ چه لا تو سرسریو ګلای راي ده هاتو ته بغداد قرض او قوالو د زبرینو سوال را ده بيری قدر یک لسوريا ماليات کوکرو بو د ذکردوو نا ويريب چته کوری که دانشجو تا خواه هست که نجیب بو با اخلاق لوو باو کمناسی که کور روژی جمعان کاری نقاشی مالانی کردو باو که لیدزی شکاتی لایمن کرد روژی که لجزیره پیدا بو و تی سیدا چیپکم. کم لبغدا با تومتی بکاری چل روژیان گرتم یسته ها تو ما ایره ده ترسم لیرش پیمزن قچاقم نامم با اکرامی حاجو لحسکنوسی توتوانی پیاناسی کی سوری دگل رعیت عربکانت بور گری تکایا یاریده بدا تیم گیان راست بچو مالی اکرم لهیچ که لامه ده تشریفی لریو چوب و قاوخانه با عربی عراقیان ملی شاتو شود نابو سیاست سربازو افسری ایرانیم با اسیری گرتو با ملا مصطفان برد وام کرد و وام کرد تانک چیم کرد و چیم نکرد پولیس قرگرتویانه خبری بو اکرم ناردوه اکرم لزیندانی داریناوه جلیبو کریوه و هاتو تا شم بو تا پنهنده عراقی لاو تی لکه دیتموه پیمود دیچوانی او تی خوده منگیده دینار وردگرم عراقم ناکه گوتم مالومندال چی او تی گلگ باشن رجانه کتی بیکی کپشتکی چکچو دست یعن اکسی شعیز پیو با. دا برد قواخانی کومونیستان لسر لارادک شا که همو پشتی کتی ببینن یعنی ها منیش شتم ماموستا ماموستا کرینیر نیدکی شا نامی که لبغداو بوهاد حلم فچاری کراکین و سیبوی بیستو مانا حقوق وردگری تو لوی آرق دخویوا ایمین لسر کریندان در کردوا لناو کهو لگدن جواد بی شیخ آبیدم لو کرد پیمود نامرد چونو آبی؟ وته ساید من صد ل ریسوری ور دگرم چی بنرما وتم اگر وک من کئ روجی به اوتیل و بدول ل بریا چی چل ل رجب مونال کن بنیره ایو ژوتی توبه لسردست تو خود پول من ور ګره چی دله وادکم دمش ل عرق من هشتا لید یناو مستر جبو وتی بخوا 20 کم ل قرض دایو وتم ام جار قاند بی اتربسه لسر دستی تو وتم تم اری فکری کم بو هاتو بو عریزانه دی بدولت با کمن باو کم هزار تفنگچی هیا لزاخویا نوری سعید لی ده ترسی و بیلوا عرب کرن لیکی نادنوا لوانه حقوقت زیاد کن و تی دبون بنوسا دی خمه پوست دوا چند روشک بپله هد و تی سیدا صبری اصالی سرک وزیر دوای کردم وتم ایزور باشا بچو؟ وتي قط وزيرم نديتون سامدم گري فیرم که چیب کم وتيم بچو جور کلاود دا گرا سرتي بودانوهنا بلي او سرم لغی دایا او وتي چد دوه بلي قربان عرق و قحب زور گرانا با پانهندان کوپون منداني بالاسر حساب دولت بي وتي سیدا تو گالتم پیمکا وتيم هرچی لعریزه کدا نسراو بليو بلي پاري باب نام گاتي حقوقم وزیاد کن برايوان شيخ لا وطاغي چاوانوري چاوانورا پيانوت فرمو بچو عجور بوي جرامو ووتي كاكا هرو عجور كوتم باسي كلاود دا گرتنا کم حات بير لپرمي پيکاني نمدا سرق وزير ترسا وتي آي وچيا وكابره شيتا الوش وطبوي نا قربان شيت نيم حلامتما سرق وزير وطبوي زور باشا فرمو دانشا چایی چی بو بینن؟ چم با دمیوه دی خواموه پرسی دی دتوی چت بو بکین؟ لوکات دا نقل کبوانم و بیرهاتوه لپرمم دا لیکو چلمم دگل چای تی کلبو بانجی کرد ورن بی بنا در اوش دریان کردم اوش بزمی تو پاش حو تیک شیخ با هات هد و هشتا ليرم حقوق بوزياد كراوا زورت ممنونم ام جار هشتا هم بخوي ستم بومنالا کاني دنار دوا شيخ غيبو نهاتوا اوتوچي خاون اوتيل گتان پولي امي لسره وتم لسر من پاش پازد روش شيخ هاتوا لدورو دایگو بطالم کرد اتر ناموه او سگي سگبابا بابا وره سر سري اول كوي بوي راستكم پیابله او تی، کور دگل پیرشنه که هشتا ساله روز کلشورش اکتوبر هلاتوه بو مدوست. چو ممالی، زور خوش ده جیم. شوانه لبر راژیوگرام رقص منده کرد. چاوکی دست کرد بو، مم کی پرو بو، سری کچل بو وک خوام، پرچی لبازار کری بو، ددانی تاقم بو. کچی دوین شو لکاتی رقص کردنده کونگی بدر تماشا کم اویشی نبو، بطالم کردو، هاتمو اوتل من شوتم دیسندان لسرد دا بو اودل داریت لکوردستان 29 مرقدی اولیا یک بناوی ایوبی اقراد ل شام هيا لاقی کی لقب هر هفته لا قولق دکا باب مکل ری حج چوب و زیارت دیگو او لاقب فیل دزانم رنگا مومبی چوم زیارت لس درگه مرقدی لبرد حلقندرا ابو پن بور بابا اکرادی ایوبین اولیا الله سی بریدر بابا لوکه کله مشایخ کوردی ایوبی بل لاخه کی سپیو جوان و قلو دنا لوکه ده ل شباک و دیاره نه یاندس لدی بخوان او تیم گوت ابو ایوب املاقت پیراستا پیوتم بل موجیزاته وتم جابوچی لقب رودری نه و وتی او دله أملاقة بحيني جني أو عرباني لايانوية كرد أوليائي يواريك ابو أيوبو تيميوانكي عراقي زور روتمايا دالي ليريكم حق خوف ندري بو ناچي ببيني خوي ناسندم جمال حيدري سكرتيري حزب شعي عراقي وتي امسال لپايزي پنجاو شجده حزب هزبدا بر یاردرا کردستان مالی کردانو کرد حقی هیا کردستانی گوره دروسکو ایمش یاریده ادین بر همی کونگره من کردو تکتیب دو نسخش من زیراکز کردو یک یعنم با خالید بگده شیناوا وتم سیره یوهی نتان دهشت اندامی کرد بزمانی خوی کا چون استا باسی کردستانی گوره اکن وچی آخر برا استکه فشار دولت زور بو برای کوردکانش منهزه باشن سیاست مندبه بگورین وتم باله بوز بالری نتوانم بخوینم وا وتم باله بوز بالری ارین نتوانم بخوینم وا وچی هر امشو ددمه بیانی تاو حالات دبی بم بو حوالی خالد هر لا نیج شوانم بر لوحیز بخوینم وا په پلپل میداد تا بربرید تاوهالات سر باریک تیاب بورم نوشیوا. جمایز صفحه کانیش منیشان کرد که باسی کردی کدایا. کتاب پتر لچوار صد رو پر بود. تاوهالات کتاب می داده. وتم چایکمان پیداخشنده. زور باشه. امجر بکاو خو هر چی درباری کرد و کردستان بود جمع کرده. کلافلان رو پر داد و دلوا. فلان جد آوا. اوجا آپو عثمان فریا خوا. هر زور زو کردی ناملکی کسر بخو. پیرشک یک به عربی لسنوسیکا با بمرن اوانی دلن شعیبو کوردستان حول نادنو با وریان با قومیتنی دا یالا چونی چاپکن پیلکه شام بو چاپخنه ترقی لگرکی شانشینی شام اوتی عزیز اما چاپکه نوخوتی لمد اوی شوتی دره قا شاغا اپو عثمان اوتی بل اوی شوتی یک چلیری حق که هازه نسخه هر بچوه روش آمده کرا اپو من جا به باوش خلگرو با چخانه عراقی و کومونستان و بگره هر یکی سر و نسخه به خورای حوالی خالی جمالی هنبوه داری سمواتی و تی بمن دلین کس نیدی و کس بینی و قسکل نو خو منده دمینی کچی دا چی پاش ملا او گوکاریه دکی که نرخو اعتباری مرکزی سمی راستخینش لبرده بی منش گوتم هيبه قبر لينين چوتي علم خبر لينيا ديره پيوي امريکام کاري ان كردو بلان به بهره بو جمال ترکر واقدر ماني چاله شاله نسخه کندگران کویکنو 20 شگرانی عزیز، لگل او پر ریزو خوشویستی استیمن. لیل داوبم شویحاتی نکوتای چشتی مجیوری حجاری مکریانی، تا بشکیترو لشوی کتر دا پیتان دگی نوا شوتان شادو بخت ور